فصل دوازدهم یادم میآید آن شب خواندن شگفتی های آسمان را وسط فصلی که صورت های فرکی جنوب را توضیح می داد. نیمه تمام گذاشتم و از هتل بیرون رفتم بدون آنکه کلید اتاق را به دفتر پذیرش که کسی هم داخلش نبود تحویل دهم. میخواستم یک بسته سیگار بخرم. آن ساعت از شب تنها سیگار فروشی باز توی میدان ترکات بود. از های خیابان ساحلی بالا رفتم و بعد از پشت سرگذاشتن ایستگاه کوچک خیال کردم صدای توتیه بوستان را میشنوم که با صدای گرفتش تکرار میکند، فیات سبز چمنی فیات سبز چمنی پشت شیشه چراغ هنوز روشن بود سرگرم برق‌بازیشان بودند از اینکه هوای یک شب زمستانی اینقدر ملایم بود تعجب کردم روزهای قبل برف باریده بود و هنوز هم توی پارک پایین قبل از موزه انسان شناسی لایه های باقی مانده بود. موقع خریدن سیگار از کافه بزرگ گروهی گردشگر آمدند و میزهای تراس را گرفتند. صدای قهقهشان را میشنیدم. تعجب کردم چرا میزها را بیرون گذاشتند. لحظهای سرم گیج رفت. با خودم گفتم نکند فصلها را با هم قاطی کردم. برگیده درخت‌ها ریخته بود و هنوز تا آمدن تابستان خیلی راه داشتیم ماهها و ماهها بود که توی سرما و مه راه میرفتم و نمیدانستم روز این پرده کنار خواهد رفت یا نه واقعاً آرزوی حمام آفتاب همراه نوشیدن یک آب پرتقال با نِی از زندگی بود مدتی توی میدانگاه ایستادم و هوای دریا را بالا کشیدم به سگ سیاه آن شب فکر می کردم همان سگی که از دور دست ها پیشم آمده بود از پشت آن همه سال عجب حماقتی کردم شماره تلفن را بر نداشتم مثل آن شب راهی خیابان وینوس شدم خیابان همچنان تاریک بود شاید مشکل برق داشت روشنایی تابلوی مشروب فروشی یا رستوران را میدیدم اما آنقدر ضعیف که حتی کپی سیاه اتومبیلی که درست قبل از پیچ خیابان نگه داشته بود، زورکی دیده میشد. وقتی آنجا رسیدم، قلبم ایستاد. فیات سبز چمنی. واقعا از دیدن این صحنه غافلگیر نشدم، چون هیچ وقت از پیدا کردنش دست نشسته بودم. فقط باید صبر میکردم همین و بس. من هم توی وجودم صبر بسیار زیادی سراغ داشتم. چه باران میبارید و چه برف حاضر بودم ساعتها توی خیابان منتظر بمانم. شیشه جلو و یکی از گلگیرها صدمه دیده بود. مطمئاً فیات سبز چمنی توی پاریس زیاد بود ولی روی این یکی آثار تصادف وجود داشت. گذرنامهم را از جیب کتم درآوردم. کاغذی که به درخواست سولیر امضا کرده بودم، گذرنامه بود. بله، همان شماره بلاک. توی ماشین را نگاه کردم. یک ساک مسافرتی روی صندلی عقب. می توانستم یاد داشتی زیر برفاکون بگذارم و اسم و آدرس هتل فرمیت را بنویسم. ولی اول خواستم خیالم راحت شود. اتومبیل درست جلوی رستوران متوقف شده بود. آن وقت، در چوبی را هل دادم و وارد شدم. نور از یک چراغ دیواری که پشت بار بود، پایین میریخت. میزهای کنار دیوار ها در تاریکی بودند. با وجود این، دیوارها را خوب به خاطر دارم. مخمل قرمز و فرسوده‌ای رویشان کشیده بودند. بعضی جاهایشم پاره بود. انگار سالها پیش این مکان دوران پرشکوهی داشت و حالا دیگر کسی آنجا نمی آمد. جز من. فکر کردم بعد از ساعت تعتیلی آمدم. زنی با مانتوی قهوه‌ای تیره جلوی بار نشسته بود. مرد جوانی با قد و قواره سوارکارها میزها را تمیز می کرد. نگاهی به من انداخت و پرسید: بفرمایید؟ توضیح دادنش خیلی وقت می برد. سمت بار رفتم و جای نشستن روی یکی از چارپایی ها پشت زن ایستادم دستم را روی شانش گذاشتم. از جا پرید و برگشت. با تعجب به من خیره شد. خراش بزرگی پیشانیش را خط انداخته بود. درست، بالای ابروها شما جکلین بسر سرژان هستی؟ خودم از صدای واضح در پیش کشیدن این سوال تعجب کردم. حتی به نظرم آمد کس دیگر این کار را جایم انجام داده. در سکوت به من زل زده بود. نگاهش را پایین برد. به لکه خون روی کدام خیره شد. و بعد پایین به کفشم و پانسمانی که بیرون زده بود. قبلا تو میدان پیرامی هم دیگر دیدیم. صدایم را واضح تر و رساتر شنیدم. پشتش ایستاده بودم. بله بله. خوب یادمه. میدونه پیارمید. و بدون آنکه چشم از من بردارد، پوزخندی زد. همان پوزخنده به نظرم میرسید آن شب توی ماشین پریز. میتونیم اونجا بشینیم. نزدیکترین میز به بار را که هنوز صفره سفیدی رویش بود نشان داد. روبروی هم نشستیم. لیوانش را روی سفره گذاشت. از خودم پرسیدم چه نوع الکلی توی لیوان است. گفت شما باید چیزی بنوشین. یه چیز مخفی. رنگتون خیلی پریده. این جمله را با جدیت به زبان آورد، با نوعی وقار همراه با محبتی که تا آن موقع از کسی ندیده بودم، برای همین دست و پایم را گم کردم. مثل من مارگریتا بنوشین. سوارکار برایم مارگریتا آورد و بعد از در شیشه ای رفت پشت بار. نمیدونستم از درمونگاه مرخص شدین. من چند هفته ای پاریس نبودم. میخواستم ازتون خبر بگیرم. بعد از دهها و دهها سال فکر می کنم آن جایی که ما روبه روی هم نشسته بودیم خیلی تاریک بود. توی تاریکی بودیم. درست مثل مطب چشمپزشکی که هربار جلوی چشمتان شیشه ای با درجه بینایی متفاوت میگذارد تا بالاخره بتوانید حروف روی تابلو نورانی را تشخیص دهید. باید بیشتر از اینا توی درمونگاه میمونندیم. در رفتیم؟ دوباره لبخند زد بیشتر از اینها سردر نمی آوردم حروف روی صفحه را تار می دیدم گفتم به گفتم برم آقایی به اسم سلیر اومد سراخم متعجب به نظر می رسید شانه بالا انداخت در موردش چیزی نگفت فکر می کنم ازتون ترسیده باشه از من ترسیده هیچ وقت فکر نمی کردم. به بتوانم کسی را بترسانم. به نظرش عجیب اومدین به آدمایی مثل شما عادت نداره. ظاهر مستریبی داشت. جت نکردم بپرسم عجیب بودنم برای سلییر دقیقا چه معنایی دارد؟ دو سه بار برای دیدنتون اومدم در مونگاه متاسفانه درست وقتی خواب بودین در مورد این ملاقات ها چیزی نگفته بودند. ناگهان شک به درم افتاد. مدت زیادی تو اون در گاه گاوبزاری بودم. حدود ده روز. پیشنهاد آقای سولیر بود که منتقلتون کنن اونجا. با وضعیتی که داشتین نمیتونستن تو بیمارستان مرکزی نگهتون دارن. یعنی حالم اینقدر بد بود؟ فکر میکردن مواد سمی سم خوردین. این دو کلمه آخر را با دقت بیشتری تلفظ کرد. گمان نمی‌کنم تا به حال کسی اینقدر نرم و شیرین با من حرف زده باشد. گوش دادن به او همان تاثیر آرامش بخش خواندن های آسمان را داشت. به خراش بزرگی زل زده بودم که درست بالای ابروها روی پیشانیش بود. چشمای شفافش، موهای بلوطی‌اش که روی شانهها ریخته بودند. یقه بالا آمده ی دیر وقت بودن و تاریکی دوروبرمان باعث میشد درست شبیان شب توی ماشین پلیس باشد انگشت اشارش را روی خراش بالای ابروهایش گذاشت و دوباره پوز خند زد گفت اولین برخوردمون یکم خشن از آب در اومد در سکوت چشم در چشمم دوخته بود انگار میخواست فکرم را بخواند. هرگز از کسی چونین توجهی ندیده بودم فکر کردم موقع رد شدن از میدون پیرامید امدن خودتون انداختین جلوه ماشین. چونین نیتی نداشتم همیشه در برابر سرگیجه مقاومت کرده بودم هیچ وقت نمیتوانستم خودم را از بالای پل یا پنجره به کام نیستی بیاندازم. یا انطور که او فکر میکرد جدا ماشین. برای من، در لحظه آخر زندگی از همه چیز مهمتر بود. باورم نمیشه حالتون عادی بوده. دوباره به پالتو و کفش پاره پای چپم نگاهی انداخت. پانسمان را به بهترین شکل ممکن عوض کرده بودم ولی مطمئنا ظاهرم چندان جذاب نبود. از اینکه خودم را با این وضعیت معرفی کرده بودم، معذرت خواستم بله باید هرچه زودتر به سروز و آدم ها در می آمدم. آهسته گفت فقط کافیه کتتون رو عوض کنین شایدم کفشا رو اعتماد به نفسم بیشتر و بیشتر میشد. اعتراف کردم این هفته های آخر تلاش کرده بودم پیدایش کنم بدون داشتن شما رو فقط با اسم یک خیابان کار ساده ای نبود بنابراین تمام محله را برای پیدا کردن فیات سبز چمنی زیر پا گذاشتم. چمنی؟ گویا از این صفت تعجب کرده بود. ولی عین این عبارت در صورتجلسه‌ای که به درخواست سلیر امضا کرده بودم آمده بود. صورتجلسه؟ اطلاع نداشت. هنوز توی جیب داخلی کتم بود و نشانش دادم. در حالی که ابروهایش را چین میانداخت خواندش تعجب نمیکنم اون همیشه بدبین بوده تازه یه مقدار پولم داد مرد دست و دلبازیه. خواستم بدانم او و سریر چه رابطه ای با هم دارند شما تو میدون آلبانی زندگی میکنین؟ نه این آدرس یکی از دفای آقای سریره هر بار این نام را با احترام خاصی به زبان می‌آورد. خیابون آلبردومون چطور؟ خجالت کشیدم چون شبیه پلیسی شده بودم که برای غافلگیر کردن مزنون سوالاتی مطرح می که او انتظارش را ندارد یکی از آپارتمان های آقای سلیرون است. اصلا غافلگیر نشده بود این آدرس رو از کجا گیر آوردین؟ گفتم یک روز آقای سولی را توی کافه ای دیدم و وانمود کرد مرا نمیشناسد. میدونین خیلی بدبینه. همیشه فکر میکنه مردم ازش طلب دارن. وکیلای زیادی داره. رئیستونه؟ فوراً از سوالم پشیمان شدم. دو ساله براش کار میکنم. با صدای آرامی جوابم را داد. انگار برایش موضوع پیش پا افتاده ای بود. مطمئنن همینطور هم بود. چرا در جایی که ایج رازی وجود ندارد باید دنبال راز گشت. اون شب من و آقای سلیر تو میدون پیارامید قرار داشتیم تو سالن هتل رژینا. بعد وقتی داشتم می رسیدم تصادف کردیم. روی کلمه دو دل شده بود. دست چپم را نگاه می کرد. وقتی اتومبیل کله پایم کرد، پوست دستم کنده شد. ولی زخمم به گینگی خوب شده بود. هیچ وقت پانسمانش نکردم. پس اگه درست فهمیده باشم، آقای سولیر سر وقت رسیده بود. آن شب او با قدم های آسته و با بالتو تیره سمت ما می آمد. از خودم میپرسیدم آیا یا سیگاری هم گوشه لبش داشت؟ این دختر توی سالن هتل با او قرار داشت. من هم توی این سالن های هتل که همه شبیه هم هستند و مرمر و چلچراغ و دکورهای چوبی و کاناپه غلابی دارند پدرم را میدیدم. موقعیتی موقت برای دیدن یکدیگر درست مثل سالن انتظار ایستگاه قطار یا کلانتری قبل از بازشوی گفتم: از قرار معلوم بچه صاف و ساده ای نیست. کی؟ سلیر؟ برای اولین بار احساس کردم خیلی معذب است. کارش چیه؟ تجارت؟ سرش رو پایین انداخته بود. انگار می ترسید از این جواب شوکه شوم. و شما منشیشون هستی ؟ شاید. ولی پاره وقت آنجا زیر نور چراغ دیواری از زنی که توی ماشین پلیس بود جوانتر به نظر می رسید بدون شک آن شب مانتو پوست مسنتر نشانش می داد. البته بعد از تصادف هوش و حواسم درست کار نمی کرد آن شب خیال کرده بودم بور است کار سختی نیست واقعا می خواستم همه چیز را بدانم زمان به سرعت میگذشت. شاید دیر وقت بود و میخواستم رستوران را ببندند. گفت: من برای درس خوندن توی رشته پرستاری اومدم پاریس. حرف زدنش تندتر شده بود. انگار برای توضیح دادن عجله داشت. بعد کار کردم. پرستار خونه. بعدش با آقای سوری آشنا نشدم. دیگر گوش نمیکردم. سنش را پرسیدم بیست و شش سال پس چند سال از من بزرگتر بود ولی بعید بود همان زن فسومرون لافوره باشد سعی کردم قیافه آن زن یا دختر جوانی که سوار روانت شد و دستم را گرفت به یاد بیاورم وقتی بچه بودم یه تصادف کردم درست شبیه تصادف اون شب موقع بیرون اومدن از مدرسه همانطور که برایش تعریف میکردم سرعتم بیشتر و بیشتر میشد و کلمه ها همدیگر را می میدادند. انگار ما دو نفر چند دقیقهی توی اتاق ملاقات زندان کنار هم بودیم و وقت کافی نداشتیم همه چیز را بگوییم. فکر کردم اون دختر توی وانت شما این. زد زیر خنده. غیر ممکنه. اون موقع من دوازده ساله بودم. یک بخش از زندگیم، چهره کسی که بدون شک دوستم داشت، یک خانه، همه ی اینها برای همیشه فراموش می شدند و ناشناخته می ماندند. جایی که اسمش فسان لافوره بود، دکتر دیووار. فکر می کنم این را با صدای آهسته گفتم، برای خودم. اونجا رو می شناسم، توی سالانیه. من تو اون منطقه دنیا اومدم. نقشه لوارشه را که از چند روز پیش توی جیب کتم بود، بیرون آوردم. روی سفره بازش کردم. دلواپس به نظر می رسید. پرسیدم کجا دنیا اومدی؟ تو ورسان. روی نقشه خم شدم. نور چراغ دیواری آنقدر زیاد نبود که بتوانم اسم تمام روزده ها را که با حروف کوچک نوشته شده بودند بخوانم. او همسرش را خم کرد پیشانی من تقریبا به هم میخورد گفت سعی کنین بلوها را پیدا کنین اگه کمبرین طرف راست شامور را میبینین پایین تر جنگل بلونیه و براسیو." سمت راست ورسان به کمک لکه سبز جنگل جهت یابی آسان بود این هم از ورسان پیدایش کردم فکر میکنین از فسامرون دور باشه؟ حدود بیست کیلومتر فاصله دارن بار اول که فسامرون لفوره را روی نقشه دیدم باید زیر اسمش با خودکار قرمز خط می‌کشیدم. حالا گمش کرده بودم گفت سر راه میلانسیه دنبال جاده میلانسی گشتم بالاخره موفق شدم اسم تمام روستاها را بخوانم فونتن آنسولونی مونجیرون مارشوال اگه دوست داشته باشیم یکی از همین روزا اون منطقه رو نشونتون میدم این را گفت و با نگاه مرددی به من زد دوباره روی نقشه خم شدم ولی باید راهی رو که از ورسان میره فسامرون پیدا کنیم و دوباره در امتداد جاده های استانی شروع کردم به گشتن تصادفی از چند روز دارد شدم پلسیس، ترفونتن، بازاردیر، بیورن جاده کوچک و پرپیچ و خمی فسامرون لفوره را دیدم چطور امشب بریم؟ لحظه ای فکر کرد. انگار از پیشنهادم تعجب نکرده بود. امشب نه. خیلی خستم. گفتم شوخی کردم. ولی مطمئن نبودم شوخی کرده باشم. نمیتوانستم چشم از همه اسم دهکده و جنگل و آبگیر بردارم. میخواستم توی آن چشمندا زوب شوم. آن زمان احساس می کردم آدم بدون چشمانداز آدم محرومیست یک جور آدم علیل این را توی پاریس متوجه شدم وقتی جوانتر بودم وقتی سگم مرد و نمیدانستم دانستم کجا خاکش کنم نه چمنزاری می نه روستایی نه زمینی نه تو باغی نقشه را تا کردم و توی جیبم گذاشتم با سلیر زندگی می نه وقتی پاریس نیست، فقط کارای دفتر آپارتمانش با منه، مسافرتهای کاری زیادی میره خندهدار بود، پدر من هم مسافرتهای کاری زیادی داشت و به رغم تمام قرارهایی که در سالن‌های هتل و کافه دور با من میگذاشت، بالاخره نفهمیدم کارش چه بود همان کار سولیر؟ پرسیدم، زیاد اینجا میای نه زیاد نه؟ اینجا تنها رستوران محل است که تا دیر وقت بازه یاداوری کردم که مشتری های اینجا زیاد نیستند ولی به نظر او آنها دیر وقت به این رستوران آیند. گفت: مشتری های عجیب و غریب با این حال آنجا توی خاطرم متروک است. حتی خیال میکنم آن شب ما به زور شکستن قفل واردش میشویم آنجاییم. روبروی هم و یکی از موسیقی های خفه بعد از ساعت منع عبور و مرور که مردم مخفیانه با آن میرخزند و لحظاتی را خوش میگذرانند به گوش میرزد. فکر نمی بعد از اولین برخوردمون که خشن از آب در اومد باید بیشتر با هم نشیم؟ این جمله را با صدای بسیار آرامی گفت ولی با طرز بیانی منسجم و دقیق. جایی خوانده بودم که در تورن پرانسه را به شکل ناب صحبت می کنند. حالا که حرف زدن او را میشنیدم با خودم می آیا اهالی سلونی و اطراف ورسان و پسومرون لفوره ناب تر صحبت نمی کنند؟ دستش را روی دست چپم گذاشت که حالا جراحتش بدون نیاز به پانسمان خوب شده بود.